به خوشنودی اوروآمزادا خداوند جان و خرد و به خوشنودی گئوش کوروان یا روان روان جهان روان جهان زنده یا بخوایم بگیم هر آن چی که زنده است تو زندگی را خوشا است و با درود بر روان و فرهبر اشو زرتشت سپنتامان و با درود به همه شما دوستان و گرامیان و دانشکجوهان و دانشویانی که بر روی در این شب ها در این آموزشگاه به پیش ما میاد یاد هم میاد تا از اشوزرتشت و دین بهی و نیکی و راستی و مهر و خرد و در یک کلام اندیشه و گفتار و کردار نیک و سازنده بشنوید تا از دروغ و ناراستی و بی و بی و, و در یک کلام از اندیشه و گفتار و کردار دروغ و زیانبار دوری کنیم. امروز بر اساس راهنمای زرپشتی روز فروردین هست و این نام و این واژه فروردین از فرابهر گرفته شده و فرابهر هم که ماناش چیه هست؟ نیروی پیشبرنده و نیروی پیشرفت بنابراین فروردین روزتون هم شاد باشه ماه هم که چیست؟ ماه مهر سه روز پیشم که دوشنبه بود روز مهر بود از ماه مهر و جشن مهرگان که بیگمان همه آشنا هستید و با کمی دیر کرد در اینجا به همتون تون شاد باش میگم و یادآوری هم میکنم که مهر یعنی پیوند و پیمان و پشت که خود واجه اشک هم از ریشه همون عشا یا عشم گرد که امروز می‌خوایم در موردش گفته بکنیم هفته پیش از دین یا دعنه و مانا و مفهوم اون گفتیم که دین چیست خرد آقا هست و وجدان هست و چشم بینا یا بینش درون و دین خوب و به اونی هستش که دارنده خودش رو خوب و به و زیبا سیرت بکنه اه آهاز کردیم از پایه های دین و جهان جهانبینی زرتشتی یا مزدی گفتن و از همشاست یا اصول پایه های هستی پایه‌های های دین زردوشتی و اولیش رو گفتیم سپنتا مینو یا اون گوخر و ذات و صفت و آفرینندگی احورام ازده که از اون، از هن هست که آفرینندگی به طور کلی آفرینش شکل میگیره که ما بهش بشمیگیم سپنتا مینو مینوی آفریننده و پیش برد سپس از وهممن گفتیم وهمنه یا بهمن خودمون که یعنی اندیشه لیک و سازنده و اینکه انسان به یاری وهمنش هست که به خودشناسی جهان شناسی و سرانجام خدا شناسی میتونه دست پیدا کنه و همچنین از خیرت گفتیم دوستان که چیست نیروی سنجش و بازشناختن خوب از بد یا سازنده از میرانگر و اینکه خوبی و بدی یا بهتر بگیم بد و بهتر نسبی باشه دو راه اندیشیدن هست که در واجهگان زرداشتی میگیم سپنتا مینون در برابر انگرم و اینکه که انگرم واژه است که تبدیل شده به احریمن و اینکه که نه, نه یک موجود است یک موجود جدا است و نه شاخدو می دارد و بلکه اندیشه های بد و مخرب و ویرانگر هستند که انگرم عیی هستند یا اهریمنی هستند و اینکه انسان هست که می تونه با گزینش ها درست در واقع اهریمنی اندیشه و گفتار و کردار بشه و یا وارون اون سپتا منی بشه به سوی سپتا منی بره یعنی اندیشه هاش اندیشه های خوب و سازنده و پیش برنده بشه خب امروز می‌رسیم به اشا یا آشا یا ارتا و ارتا. یه بار دیگه این توزی رو بدم که این دو تا یکی هستند. اون ر و ت در آرتا ارتا تبدیل شده به ش یا عشر که از این به بعد هم من هم اشا رو فقط به کار می‌برم که آشناتر باشه. آرتارام به ویژه برای این گفتم که این واجه راستی که ما امروز میدیم دقیقا از همون رتا که ریشه بسرار عوستاویش باشه میاد اینجوری بگم که اگه بخوایم همه دین زردوشی رو در یک کلمه کوتاه کنیم یا تنها یک پایه اصلی بخوایم براش در نظر بگیریم میتونیم بگیم همین اش اه ساده ترین و نظر واجعی هم ترین معنیش راستی هست به خاطر همین است هم هست که مهمترین و پایه‌ای ترین نماز زرد داشتی هم که عشم وحو باشه همونی که میگیم عشم وحو وحیشتم هستی اوشتا هستی یعنی عشا یا عشایی عشم بهترین نیکی است بهترین خوبی است و اوشتا استی. نتیجهش اوشتا است که اوشتا به معنای هم مجدگانی پاداش است و به معنای خورسندی و خوشنودی و رضایت و خوشبختی یعنی اگر ادم بتونه عشا رو با عشا همه هایم بشه راه راستی و درستی بره و رضایت و خوشنوبی و خوشبختی برای شده پس اگر بخوایم ببینیم خوبی چیه نیکی چیه بر اساس همین نیایش که میگه بهترین خوبی عشایی است پس باید عشای راستی, راستی رو بهتر بفهمیم و خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم یا راست و درست بشیم کسی که با عشا خودش رو هماهنگ میکنه، بهش میگن عشوان یا عشواند یعنی دارای عشا و کسی که به قول معروف، به حد نهایتش برسه کسی که عشوان هنست یعنی خود راستی میشه خود درستی میشه که کوتاخ شدهش رو میگن عشو یعنی همونی که ما در پیچ نام زرتشت مهربان و بهش میگیم که عشو زرتشت یعنی کسی که با عشا و راستی همه هنگ است و یکی شده است و از اونجا که در دنیای ما که هر چیزی رو با ضد و وارونش میشه وارون عشا چیست؟ دروغ به همستایی یا دروج، بنابراین وارون یا ضد راستکار چی میشه؟ دروخ کار یا ورستایی وند که پس راستی در برابر دروغ و راستکار در برابر دروخ کار این واژه اشها توی گاته های عجوزتش بیش از سال هشتاد بار به کار رفته یعنی بیشتر این واژه کلیدی هست این واجه ها رو بهش میگن واژه های کلیدی اینهایی که ما بهنامه افشاس بدار و متجبی هم به شک گوناگونی اون رو اونو برگردون کردن ولی اون چ غره مورد پذیرش هست و به کار میره به غ از خود راستی اینها هست، نظم یا خجار یا سامان هستی ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان نیروی ساماندهنده جهان و ماننده اینها بنابرای آموزش های عشوزت دوشت عشا همزمان با پیدایش جهان هستی پدید اومد و کارش اینه که جهان رو به پیش ببره حرکت بده جهیش و آفرینشو، و آفرینش و و بالش و پیشرفت رو سامان دهید این اشها از دانش خدا است از دانش مزداست و در اوست و با اوست بنابراین میتونیم بگیم هستی از هستی هستی به وجود اومده به وجود میاد و مزدا اون فروزه قانونمندی و نظم سامان دهندگیش به پیش میده و بر اساس این قانون و نظم است که همه چیز روی میده بگذارید چند تا نمونه بیارم تا این قانون مندی رو بهتر بشمسیم ما در هر سطحی از هستی که بشمسیم نگاه بکنیم میتونیم اشعار رو ببینیم که در کار هست و ما هم با اندیشه و و هوومین بود باید چه که بیشتر میتونیم رو بشناسیم تا هم ازش سر در بیاریم و هم برای بهتر کردن هرچه بهتر کردن زندگی خودمون زندگی فردی فردیمون و اجتماعیمون خودمون رو باش هماهنگ کنیم. اگر از بیاییم از دنیای بزرگ به قول مرو شروع کنیم دنیای بیرون از خودمون با سر خودمون از آسمون و ککششان ها و سپه رو بیاییم در طبیعت پیرامونمون نگاه کنیم، می بگیم که هر آنچه که سبب به وجود آمدن برای نمونه از ب... از ستاره ها و سیاره‌ها رو به وجود نیره از بینی بره و قانون مثل قانون جاذبه یا همون کشش رانش عمال و اکسفادند یا کنش و واکنش حرکت و جا تغییر شکل وابستگی و خدا هر چیزی که ما در فیزی رو ماننده بتونیم جاش بدیم اینم میاد جزء اشحاب حالا که بیاییم و توی خودمون تو ما جانداران و انسان تو خودمون نگاه کنیم و از تن و بدن آغاز کنیم که به سادگی میشه گفت تا زمانی که همه اندام ها و ارگان های بدن ما از دل و مغز و جگر گرفته تا ریه و رودب و کلیه و کبد و ها در کار درست خودشون باشن در هماهنگی با هم باشن و در نظم و ساما و در اندازه های خودشون باشن و مشکفش کدوم از اون حتی اندازه خودشون نه کمتر بشن و نه بیشتر ما هم چیستیم؟ درست است و اشای بدن ما هم برقرار اکنون اگر این اندام ها حالا یکیشون یا چند تا ایشون از اون نظم و اندازهشون برن بیرون. چی میشه؟ اون نظم و سیستم ها به هم و ما بیماریشون. پس باید از شای تن خودمون رو بشناسیم و با خوراک و نوشاک شایسته و رسوندن هوای پاکیزه و خواب بسنده در واقع تنمون رو اشایی کنیم و سادم کنیم روان هم همین داستان رو داره اون خوراک روانیمون رو مگه درست بهش و آرامش در زندگیمون برقرار باشه و نیکمنشی و نردخوری و مهورزی و و از اون سو البته بینیازی و دلیلی و هران که برای روانه درست نیاز است داشته باشیم پس بنابراین روانمون هم اشایی است و خوشنود و شادمان هستیم البته تن روان هم میدونیم که با هم در پیوند راست و درست مستقیم هستند بنابراین اگر یکی درست نباشد دیگری هم درست نیست حالا اگر وارونم یعنی دروغ رو به خودمون راه بود و هم هوای ناپاک بهش بدیم غذا کنون شاک بعد بهش این دور و های و داروهای زیانبار و رو به بدر خودمون برسونیم و یا کمتر یا بیشتر از اندازه بخوابیم تمبلی کنیم کاری کنیم از, سو، از سوی دیگه هم روان خودمون رو به فروزه های خشم و کینه و رشک و اصادت و ترس و زیاد خواهی مانند اینها آرایش بدیم اون وقت که اشای تن و روانمون رو شکستیم بیمار میشیم بمگین میشیم افساده میشیم نامید میشیم و زندگی ترخ و سیاه میشه پس اینو بهش میگیم عشای تن عشای روان و با یه تعریف دیگه اگه همه پس اندامهای تن و روان در جای درست و شایستی خودشون باشه و کار و وظیفه خودشون رو به درستی انجام بدن و از اندازه های درست خودشون نزنند بیرون قانونمندی و نظم خوب و سازنده هم برقرار میشه و برقرار میمونه و روان رو سالم شه حالا همه قانونمندی رو بگیریم از انسان بگیریم تو جامعه انسان و بخشای گوناگون رو میتونیم بگیم عشای خانواده باید برقرار باشه عشای در سیستم کشورداری از اشا در سیستم اداری و اینها در اینجا هم میتونیم همین تعریفو ها بکنیم هاج که در یک جامعه هر کسی بر اساس شایستگی هاش در جای درست و شایسته خودش قرار بگیر و البته این این این موقعیت برای همه وجود داشته باشه که بتونن در جای درست و شایسته خودشون قرار بگیرن بعد هرکیزی هم خیشکاری و وظیفه خودش رو به درستی انجام بده و هماهنگی و اندازه برقرار باشه. هیچ از اندازه های درست و سازنده خودش بیرون نزنه اشای جامعه هم برقرار بشه. از این رو اگه نگاه کنیم واقعا بگیم که این بزرگترین شاکار از روزندوشت این بود. این هست که در این کند و کابی که در زندگی پستی کرد به دو راز بزرگ در جهان هستی پی بود یکی اینکه هیچ هیچ هیچ ای هیچ جان، جانداری هیچ آنچه که هست هیچ چیزی جلال مستقل نیست از چیزهای دیگر و همه چیز از کوچکترین ذره ها و ریزه های نادیدنی گرفته تا کردشان های بزرگ که حیام داره به بیشتر میبیندشون بیشتر پیدا شد میکنه همه همه اینا به هم وابسته هستن و پیوسته هستن. یکی این دومی که همه اینا در زیر فرمان یک نظم هنجاری هستن که از یک دانش بزرگی برمیاد و همه چیز هم تا زمانی میتونه توی این چرخه هستی بماند که از این نظم و از این ریتم کیهانی پیدا کنه و وگر یعنی نه از بین حاضر بزرگ در شاهنامه چلان خودش چی گفته توانا بود هر که دانا بود صد دانش در پیر و بود یار ایشان فقط منظورشون دانش‌های روز دانش پزشکی و مهندسی و مانند اونها احتمالا نبوده برد که اون دانش بالاتر دانشی که زامن توانایی و برنایی یا جوانی هست مزورشون بوده و همون عشاهای دانش بزرگ بوده از عشاهای خانواده گفتم میخوام یک کوچک اینجا بگم در مورد خانواده که البته وقتی میگیم خانواده میشه گفتش که در در بین در پیوند و رابطه بین انسان ها انسان تا وقتی که با خودش شست و در تکیه خودش هست خب یه قوانین دیگری برش رو فرماست که البته همون قوانین است ولی وقتی میاد در جامعه و رابطه دو انسان مطرح میشه برای که این رابطه هم اشایی باشه این پیوند هم اشایی باشه همونها برقراره یعنی هرکس در جای درست خودش باید باشه و تفاهم به معنای هماندازگی به اندازه باید وجود داشته باشه و میگه که این سخنان را به شما میگویم ای نو عروسان و ای تازه‌دامادان پندم را با اندیشه بشنوید و به یاد بسورید همواره با منش نیک زندگی کنید و هر از شما در راستی از دیگری پیش گیرید تا زندگی و خانمان خوب برخوردار گردید ای مردان و ای زن این بدرستی بدانید که در این جهان دروغ فریبنده است از آن بکسرید و آن را مگسترانید و این بدانید که آن خوشی که از تباهی و تیرگی راستی به دست آید مایه قندوه هست و دروندانی که دروندان گفتن همون دروغکاران دروندانی که راستی را تباه می‌سازند زندگانی مِی‌نوی خیش را نابود می‌کنند این هم به هر حال پنده پوچکی در رابطه با زندگی خانوادگی که امیدواریم که همه این رو آویزه گوش داشته باشیم تا زندگی هامون خوب باشد پس اگه به کوتاهی بخوام بگیم عشایی یعنی راستی و ضدش هم یعنی دروغ. و این پاگه دین بهی زرتش دیزی راستی یعنی چی یعنی حقیقت یعنی واقعیت حالا این،, این حقیقت و واقعیت هم یکیست ما اینها را از هم جدا نکنیم راستی در اندیشه و گفتار و کردار یعنی, یعنی چی یعنی هر آن که در فکرت هست، در اندیشت هست اگه به گفتار و کردار میاد باید همون باشه یعنی که آدم یه چیزی رو فکر میکنه ولی یه چیز دیگر رو میگه خلافش رو میگه یا انجام میده در واقع روراست نیست صادق نیست صداقت نداره کسی که حالا اونم اگه بخوایم وارد روانشناسیش بشیم گاستان چرا حالا یه میافته چرا کسی از خودش اگه آغاز بکنه با خودش دستگم صادق نیست یا میخواد فریب بده از خود فریبی آغاز میکنه و به دیگر فریبی میخواد برسه این خب در حاله گناگون دارد که گذشته از میشه گفتش که پرورش نادرست از, از ترس ها میاد از ناغایی ها میاد از بیاخلاقی میاد بسیار خب در حاله میشه براش بود. ولی این در واقع این باز میگیم این پایه دین و اندیشه ما هستش که باید راست درسی دن و دروغ نگفت دروغ همچون هم شاه خودم ندارد خب نه مسلحتی نه سفید دروغ دروغه یه دروغ ممکنه امروز سفید به نظر بیاد ولی نتیجهش یه روز سیاه ازاد حالا دیر یازد حالا میگیم مسلحت دروغ مسلحتی یعنی چی؟ مسلحت چی؟ چه کسی؟ برای چه مدتی چی کسانی این وسط از این دروغ به اصطلاح مسترتی صدمه بیبینند و صدمه بکارند دروغ این دروغ یه تعریف دیگه هم میتونم برای دروغ بگم که این, این واژه دروغ این درد بسیار اون درد دبوره‌ی آغازش میتونیم بگیم همونیه که ما در واژه دریدن داریم یعنی بریدن و پاره کردن ببینید حران چه که انسان رو از اون خیشتن خودش از اون بون و درونو ریشه خودش این بند که من میگم یعنی اون ذاتمون گوهرمون که است مزداییست است ما از درون خدا رو درون خودمون داریم عشا رو درون خودمون داریم هرانچه که من رو از اینها ببرد و جدا کند به زبان دروغ هست هرانچه که من رو از خدای خودم ببره و بخواد به یک گونه دیگه اینو برای من تعریف کنه از راه های دیگری به من وصلش کنه اینو درون من هست بنابراین این یه دروغه اگه من رو بخواد از ریشه های خودم بباره دروغه اگه من رو بخواد از انسان هایی که اطرافم مثلا پیرامون خودم بباره و به جایی که اجتماع باشم فرد بشم و تک بشم باز گونه دروغه از طبیتتم جدا کنه من رو از طبییتتم ببره من نفهمم که با آاخشش ها و با طبیعتم که اونها نهاشه هستند در واقع به هم پیون داریم دروغه پس منبراین این بریدن ها و پاره کردن ها دروغ است به گونه ای بیاداه بودن و پیمان نگه نداشتن به خود ما اینا پیش در آمده دروغه پس دروغ هرراچه است که، نیروهای درون و برون رو از هم ببره و جدا کنه با هم همخانی به همانگی نداشته باشه به گوهر انسان و به گوهر زندگی به طور کلی آسیب برسونه و مالی و نگهدارنده آزار جان و ترس و چینه باشه پوسیدگی و تباهی بیاره و سرانجام میتونیم بگیم که بدیر و بده که اینه رو مهنشون بده، زشتی رو زیوانشون بده و به خردی رو خرد جربه بده یا فرید بده در واقعه و ریا کنه اینها از همه از مظاهر دروغ هستهش. بنابراین به عنوان ذرتشتی، به عنوان بهدین یا به عنوان انسان، انسانی که به ریشه مزدایی و معنوی خودش آگاه میشه خود به خود باید اگه شناخت درست پیدا کنه به سوی اشراق بره و از دروغ دوری کنه. من از زمانگر ادمنی گرامی میخوام که اگر شده نیست یک موسیقی پخش بشه تا من هم همزمان بتونم ترشه‌ای که اومده نگاهی بکنم و یادداشت کنم. اگر امکان داره جونم بخوام تو زاین دیوین سال که بر تو باقد مهرگان نیم فال چو این روز خورم فراخانه خال و گی زباستان برایت به جا درود بی د ایران و ایرانیان خجاست بوبد بر شما مهربان درود بی د ایران و ایرانیان خجاست بوبد بر شما در این روز فرخونده گردن فراد شد از مهر تو مهرگان فرفراد این روز فرخونده گردن شد از مهر تو مهرگان سرفراد چه نیک از مهران چه خوش کش زاد چه گندم زخاک گلاید زخاک دروبی به ایران و فیرانیان خو جسته بود بر شما مهرگان دروبی به ایران و فیرانیان خو جسته بود بر شما مهرگان دوباره و سپاس از آهنگ زیبا خب در خدمت شما و امروز از و راستی درستی سخن گفتیم و از وارون اون دروخ خب میتونیم از این به بعد بپردازیم به از این به پرسش هایی که آمده تا زمان بیشتری هم داشته باشیم که به پرسش های دوستان پاسخ ای داده باشیم نخواست از اینجا آغاز کنم که بار پیش یک پرسشی بود که من گفتم نمیدانم و پرسش از اینجا بود که آیا, نظر، آیا درست است که در زمان گونهی خودش رو زرتش پرسشگر اینجوری پرسیده بودن که نماز یا نیایش در سه بار بوده در روز و بعد پنج بار در روز شده که من خب اونها گفتم من نمیدانم و هنوز هم میتونم بگم که نمیدانم اما انگامی که تشمه ها بودن تا زمان برسه و در خدمتون باشم از جمعه دوستان یک نواری رو از آه، آه، گفته های شادروان مبت شعزادی پخش میکردن که در در پاسخ پرسشکر ایشون گفتن که چنین بوده و سه وعده بوده با اینها که گفتن که عجوزرتاش خودشون گفتن که سه وعده صبح و نهار و شام که هر رو مقفیه میکنم که وقتی میکنیم که خود عجوزرتاش گفتند خب چنین چیزی در گارتها ها به اون معنا شاید نباشه بخش های دیگر که به هر حال از این فرهنگ آمده حتما بوده که ایشون خوب بهتر از من می‌دونند. بنابراین بسکتاً باسخ رو از شادرمان مولود شهزادی دریافت کردیم که ظاهراً چنین بوده. اما همزمان هم ایشون در ادامه سخنانشون چنین گفتم هم منظورشون این بود و درست و راست هم بوده هست که منظور این است که نیازی نیست ما صبح و شب بخواییم همش به نماز و نیایش بیستیم یا بشینیم یا بیستیم خب آن خوب هست اون به جای خود اما بهترین نماز و نیایش همان که گفتند کار و کوشش و خدمت به مردمان و خدمت به زندگیو هستیست بنابراین نباید این رو به گونه‌ای بهانه‌ای بکنیم برای اینکه دم بدن هی کار و کوشش روزانه رو بشکنیم و کاش که کاش که نماز و نیایش ما راستین باشد یعنی به راستی وقتی که به نماز درمیایم اون در واقع پیام خوب و انسانسازی که در اینا هست براستی بشندیم و خودمون رو در ادامه کارمون قریتر بکنیم نه اینکه که بحانهی باشه که با کل مرفع از زیر کار و کوشش شانه خالی بکنیم نباید این باشد خب پرسش هایی که عنوان شده از جمعه این هاست. آیا برای زردوشی شدن حتما باید صدر پوش شد؟ من فیل می که حالا شاید به اندازه کافی این گفته نشده ولی حالا میشه شه باز یه بار دیگه ما بگیم که ببینید زرطشتی شدن یا زرطشتی بودن این یک فرایند یک یک راه هست یک است، یک روند یعنی چی؟ یعنی که برای زرتشتی داشتی بودن باید تونست که فهمید که ز... یعنی چی زرتشتی بودن این همین که ما داریم در اون به سخن رو مهمترینش همین هاست داری راه دور نریم همین راستی درستی خب، اگه ما بتونیم به راستی به سوی این سپنتامن بودن که میگم دست کمی خاص رو داشته باشیم و به اون سو بریم و خودمون آروم و آروم چون اینکه پروسس گفتم اینکه فرایند ولی یه جا باید آغاز بشه حالا این آغاز برای یکی از زودتر برای یکی درونش هست برای یکی به دلائل دیگر از این راه دور شده بوده حالا میخواد دوباره برگرده به این راه راه راستی رو اگر بریم و خودمون رو آروم آروم پاکیزه کنیم از آن دروخ ها در واقع اول به یک صداقت و راستی و رو راستی با خودمون برسیم تا درون خودمون رو پاکیزه بکنیم وقتی که درونمون پاک پاکزه شد خود به خود رو بیرون, بیرون هم میاد و به قول معروف واکنش پیدا میکنه رو به بیرون خب این روش میگیم زرتاشتی بودن زرتاشتی بودن فقط به معنای این که یک آین و یک به قول معروف سنتی برامون انجام بشه و حالا صدا رو بترین کنیم یا کشتی ببندیم و ولی این راه رو نریم پس از اون هم بیاییم و دوباره به گونهی راه غیرعشایی رو در زندگیمون بریم. خب این زهد دشتی بودن نیست. بنابراین اون آین هم ارزشی ندارد. خب این آین یک سنت هست. یک چیزی که از به گفته ای از زمان خود عشو هم وجود داشت. تارا برای کسایی که نبینند باز تکرار بکنیم که ظاهرن پدران ما ملاران ما خب در میان جامعه خودشون در میان خودشون یک آینهایی مثل همشین داشتن برای جوانانشون فرزندانشون که به سن رسیدگی و بلوغ میرسیدن برای که به گونهی به زندگی بزرگترها وارد بشن کمر میبستن اینو بشه در فرهنگ ما آمده کمر کوشش بستن کمر حمد بستن کمر پیمان بستن کمر پذیرش مسئولیت بستن خب از روزرتاش انگامی که دعینای خودش رو آورد و به قول معروف ازش یک, یک سیستم ساخته شد خب این آین رو که در بین در بین مردمی که در زندگی بی کرد وجود داشت خب اینو به شکل یک آین تبدیلش دین هم در و پس از اون هم خب ادامه پیدا کرد بنابراین و از پرسش کوتاه پاسخ این است که حتما نه حتما نبشصد پوشی. پوشی خب خود انسان رو اگر بتونه به اونجا برسه و این کارو بکنه و به راستی این کارو بکنه و بدونه که داره چرا این کارو میکنه خب بهش کمک میکنه کمک میکنه که در راه خودش و در پیمانی که با در جول با خودش و او را مظ بنده و سپس با جامعاش بتونه در اون راه استوارتر بیسته و این بهش یک انگیزش یک انگیزش روانی میده که که بهتر در اون راه بره و اصفت کفتن حتما باید نماز روبروی آتش خواهند بازم مثل همه چیز دیگه ببینید یک اصل کلی رو ما باید اینو بده. بدون هر جوری که هر کسی بگه این یک اصل است که در دین ما بکرانکان حکم و دستور وجود نداره شایسته‌ی وجود داره. اگر ما یه چیزی رو تشخیص دادیم که شایسته است برامون و به خاطر همون برگزیدیم برای خودمون، خب ازش بهره می‌بریم. مسئله آتش که در واقع مسئله نور باشد برای اینکه دانیم دیگر نور رو ما به عنوان یک نماد و سمبولی از مزدار از دانش، از حقیقت، از همون راستی، اشا و این آشا آشا و یشتا آرتیدهشت نمادش آتش است کلی بنابراین آتش و نور یک سوی نیایش است اما اگر هم نبود کسی نمیگه که نیایش نمیشه کرد چشم ها رو ببند نیایش کن این برای درونت داره میکنه اون نور رو درون خودت داشته باش روبن نور بیرون ایستادن نور زندگی خب میگم انسان رو با اون چیزایی که نمالشه از پیوند قریه تری میده ولی خیلی وقت هست که آدم باید تشمه رو بمنده آدم باید به درون بره به قول معروف بنابراین حتما نه نیست چنین چیزی نه ولی اگه باشد تحصیلش بیشتر خواهد دوست دیگری گفتن اشها به, به دلیل به گستردگی معنی های بهترمیست اشها رو راستی و درستی معنی کنیم نه فقط راستی خب آره ببینید درستی میگم باز ببینیم که معنی این چیه و ما چی در نظر داریم وقتی میگیم درستی درستی که مثلا در تندرستی میاد یعنی تنمون سالم باشه آره. یعنی همه سیستم درست کار کنه بل. میشه در این رابطه گفت که درستی هم هست درستی یا اینکه که به معنی کامل بودن درسته شدن همه شدن کامل شدن که اون را البته براش ما واژگان دیگری داریم که بعد هم بهش میرسیم یا همون خردات حروتات یا همه شدن درش هست ولی راستی و درستی گفتن خیلی هم زیباست چرا که نه چشم ما میگیم راستی و درستی جونم درست همست دوست دیگری گفتن که هدف از تکرار ادیان در طول تاریخ چیست؟ آیا درست است که در زمانهای مختلف و مکانهای متفاوت خادق هستی هر با یک دین و آین جدیدی تأسیس می کند؟ و در حقیقت اساس وحدت عدیان یکیست؟ این پاسخ، به این پرسش همونطوری که در بارهای پیشم گفتم بهتون یه میخواید بل میگرده به دیدگاه ما باز میگم به جهان و هستی شناسی و خداشناسی اینجا میتونم یکتا تا چیز رو بهش اشاره کنم یکی که برای نمونه واژه خالق رو بکار کردن البته خب ما وقتی خالق رو خیلقت بودیم، در نظر ما همون آفرینش و آفرینندگی به نظر میاد ولی اگر به اون فرهنگ هایی که خلقت رو به گونه ای با تعریف خلقت به کار میبرند خب اون خلقت و آفرینش متفاوت است نظر ما خلقت خلقت از هیچ است آفرینش برای ما بهتره بگیم که پیدایش هست یعنی آفرینش چون همیشه هستی همیشه وجود داشت و وجود خواهد داشت بی سر و بی تح هست از نظر ما بنابراین پیدایش هست یعنی هر شکلی به شکلی دیگری پیدایش پیدا میکنند دگرگون میشود از هیچ چیز پر نظر ما به وجود نمیاد این حالا از نظر خود واجعه و این هدف از تکرار عدیان در طور تاریخ چیست؟ اگر ما اینجوری نگاه کنیم که پس خداوند یا به قول ایشون خالقه هستی گاه به گاه یک دین و آین جلیل رو بیشون تحسیس می کنند بس بنابراین هدف این از این کار داشته باشند خب اگه بخوایی ما از اون دریچه نگاه کنیم یه جور رویه صحبت کنیم ولی از اونجا که ان نظر ما آفریننده آفرینش. اینجوری مثل انسان نیست که هر چند چند نفر فکر کنند خب حالا من بیام یه دین جدیدی باید تأسیس کنم چون مردمان از اون پیام من دور افتادند انسان‌هایی هستند پیاوماورانی که انسان‌هایی که در زمان و مکان خودشون تونستند به شراه بنا شرایطی که وجود داشته اون حرف خودشون رو راه خودشون رو برای مردم زمان خودشون به قول معروف نشان بدن و پیرو پیدا کنند و سیستمی ساخته بشه و بر اساس اون سیستم یک دین آین جدیدی به وجود بیاد اینا هدف چی میتونه باشه؟ اگه بخوایم هدفی براش بذاریم امیدواریم که این هدف برگرداندن مردم به راه راستی و درستی باشه به در اون راهی که از نظر ما در بونو ذات هستی و هستی ما انسان ها و هستی وجود داره باید وجود داشته باشه آ اگر این دین هر دین آین و آیین و فلسفه و ایدئولوژی و بینی و هر سیستمی سیستم فکری و باوری که ساخته میشه اگر هدفش و کارکردش به سوی نیکی باشه به سوی درستی و راستی و اینها باشه خب از نظر ما هدف خوب و درست است و اگر چنین نباشه نه درست نیست اساس وحدت ادیان آری اگر ما باز گفتم اگر بر پایه‌ی این شالوده ها دورور این محور ها بتونیم همه ادیان همه ایدولوژی ها انسان ها جمع بشن و هدف سازندگی باشه هدف آباد کردن این جهان باشه و درونش با آبادی و آزادی و در اندازه های درست زندگی کردن باشه و شادی و خوشنوبی همگان رو در برداشته باشه چرا که نه ما همه و هم یکی هستیم اصولا ما همجوی گفتم وحدت رو یگانگی رو در همه چی می‌بینیم ولی باز میبینیم هستن شروع وقتانه دلاله گوناگون، سیستم های فکری که اینگونه نمیاندیشند، اونها فقط یک گروه ویژه رو نگاه میکنند، نه همه اینسان ها رو، و خب این با اون وحدت و چه وحدت علیان باشه، چه وحدت وجود باشه، جوردر نمیاد. آم و سرانجام چیزی که نوشتند ابارت خداوند خداوند نورالتی نور است در نظر من چه مفهومی داشته باشد خب اصولا فلسفی نور یا به قولتی فلسفی شاق خب دیدگاهی فلسفی است که نگاهش نگاه به نور بعنوان میچه گفتش که منبع و سرچشمه وجود و است و خداوند شیدن شید نور و لنوار و نورانی نور هاست خب این آره این بسیاری ادیان به این گونه آمده و می‌بینیم که پس وقتی ما صحبت از نور و حالا آتش جایگاه خود رو داره و به ویژه نور آتش رو و نور رو به عنوان سوگ نماز و نیایش برای این که بتونیم اون منبع اصلی نور رو یا خداوند رو در نظر بگیریم خب در اینجا نشون داده میشه عجیزی بدین من پرس اشاره بتونم دنبال کنم میگویند که آیا این درست است که تا به قدرت رسیدن اردشیر بابکان، آهین زاشتش در سراسر ایران رواج داشت و به عنوان دین معرفی نشده بود، دین زرداشتی به مفهوم امروز آن که از دین هست از چه زمانی را ااصلرا کرده و بنیان گذار و یا بانیان مفهوم دین زرداشت چه کسسان یا چطوری از تاریخ است. از یه نگاه ببینید وقتی که ما گفتیم که دین یا دهنا، در زمان یعنی از گفته خودش زرتشت خب در هم وجود داشته بنابرین مشکو بنیانگذار دعنای زرتشتی به دینی خودش زرتشت بودن و به زمان بسیاری هم پس از ایشون به هر حال حالا از پرزندانش یا نزدیک‌ترین کسانش سازمان سازمانکی داشتند و در واقع این دین از اونجا به وجود اومد و ادامه پیدا کرد اما چیزی که میشود گفت این است که در هیچ زمانی تا پیش از زمانهایی که دیرتر اومد به دلالی که در پایپ بالیشم عنوان کردم به ویژه در زمان ساسانیان در پایانش هیچ وقت اولا دین زرتشتی میشه گفت که دین بیشترین و دین مردمی و گاهی هم بعضی هم میگن دین دین پادشاهی اگه اسمش رو بذاریم بود و دین مردمی دین های دیگر بود هم دین های گناگونی بودن اگه اسمش حالا دین نذاریم و به حال ها سیستم های فکری اسمش رو بذاریم از مهرگرایی تا اونی که به نام زروانی میگن تا بعد که مانی آمد و اون دین خودش رو گذاشت مزدک مزدکی دین نبود یک جنبش بود و و خوب چیزهای دیگری هم وجود داشت و میگم پیش از این که یک سری تحولات در جامعه ایران رخ بده و دلیل یکی از در حال هستیشم پیدایش مسیحیت رومی بود در واقع در ایران هیچ کس به دین کسی کاری نداشت یا بخواد دین رو به زور به کسی دیگری بده نه چون این چیزی ما نداریم در طول تاریخ حالا ها که اشکامیان که اصلا گونهی دورتر شده بودن ساسانیان به دلاله خودش که اونم جای صحبت داره که غالا به تاریخ دانان بیشتر باگذار میکنم رو کردن به اینکه دین زرتوشی رو به عنوان پایکایی برای گرداوردن ایرانیان به دورش و در واقع وحدت ایرانیان بگذارند خب اون صحبات دیگریست که به اون واقضای میکنم ولی باز میگم بانیان مفهوم دین زردوشتی دعنای زردوشتی از خود زمانه ایشو بودن ولی این که به صورت یک سیستم دینی که بخوایم بگیم اون هیرارکی خودش رو یا اون حرم خودش رو داشته باشه شاید بتونیم بگیم که بیشتر به نظر ما تو زمان ساسانیان بیشتر شکل گرفت ولی به هر حال تو دل جامعه از دیده این که خانواده در خانواده ها از قدیم حالا یه زمانی مادر بود یه زمانی پدر بود به عنوان بزرگتر همجور ما تو جامعه خب حال فرمان روایی بود نمیدونم پادشاهی بود بزرگی بود, بزرگی بود. بزرگ کوچکی بود این با این هیرارکی و هرم قدرت به گونهی همشه وجود داشته و وقتی هم که یک دین به عنوان راه زندگی خودشو در جامعه گسترش میده و گسترش راته خود به خود اون هرم به خودشو پیدا میکنه و یک سیستم از ساخته میشه این سیستم زردتشتی و دین زردتشتی رو شاید تو مثلا میگم زمان حقامانش زیاد نمیشه دنبالش کرد و کمتر توی دوره هشکانی ولی بیشتر در علاقه دور ساسانی بسیار الان ساعت نه یک ساعت گذشته اگر از میان گرامی تشخیص میدن که ما ادامه بدیم من یک طور دیگه است میتونم که به اونا بپردازم. بسیار خب یک آهنگ دیگر بگذارید و من چند تا پشتش دیگه است که روزش های عمومی است میتونم بدعا بدان. میتونم بفهمه خواهش میکنم برای بله با سپاس با سپاس خب یک آسا که هم گرفتیم دوستان آبی هم نوشیدیم و آب پاکیزه ای خب بازگشتیم خدمت شما خب من ببینم که چه پرسش هست دو سه تا پرسش اومده یکی که پیشم اومده بود او من فراموش کردم پرس که نظر من در مورد این جمله چیست؟ دین و علم روابط ضروری منبعث از حقایق اشیاء هستند خیلی جالبه من فقط در همین جمله که 1 تا 2 و سه و 4 و 5 و 6 و هفت و هشت و 9 تا واژه است از این نقطه واژه سه تاش میتونم میگم فارسیه <تصفيق> بقیارش خب یعنی ایشون اگه درست فهمیده باشم میخوام بگم که هم دین به هم علم یا دانش از حقیقت و واقعیت و چیزها و روابط ضروری و ناگذیری که میان اینها هست سرچشمه میگیره یا منبعث میشه اگه درست فهمیده باشم خب اگر از دیدگاه ما نگاه کنیم بله چنین هست یعنی دین همجوری گفتم برای ما دانش است و دانش هم که دانش است ما میگوییم دانش بدون و دانش درون و اینها از واقعیت ها میان حالا اینکه که واقعیت اشیاء رو ما با دیدن یک چیز و یک شی که روبرون هست بتونیم به حقیقتش پی ببریم حالا چیز ها و شیها. ها حالا شاید درست نبود و درست است یعنی یک چیز به عنوان یک جسم اینه که این جسم به راستی فقط همینه که ما ظاهرشون نبینیم درونش چیست به دانش پشتش بخوایم پی ببریم به گونه فقط این چیزهای مادی و چیزهایی که به چشمیان خوب نیست که اون دانش دین دین آخه وجدان هم هست، دین آخه اخلاق هم هست و یه سری این،, این به خواهد معرف این زاویه ها میاد توش ولی به طور کلی دین و دانش از نظر ما یکی هستند. و هرچه دانش بیشتر، فرد بیشتر و دینشناسی بهتر و بیشتر پرسش دیگر نابرابر نسبت به جهان بینی زرتوشی دارد آیا این دین در راه اشاست و یا ناسازگاری هایی که امروز در جهان میبین را نمیتوان از آن دید که اسلام و ادیان ابراهیمی سر چنین ناسازگاری هایی در جهان است خب این پرسش رو من امتونم این پاسخ بدم کاری هم به یک دین و یا یک دین های بیجهی ندارم من البته قبل هم خب در این مورد گفتگوی کوچکی شده هر هر طرز فکری هر سیستم باوری و فکری که حقیقت حقیقت چیزها رو حقیقت جهان رو آن چیز که ما میبینیم دست کرد، نتونن ببینند یعنی این یکانگی همه چیزها و وحدت در واقع هستی رو به این گونه ببینند و برتری نسبت به یه چیزی به یه چیز دیگه بذارند یا بخوان فقط سود و در واقع منفعت یک روح ویژه‌ای رو فقط بگشن بیرون و بقیه رو بزنن پایین خب یعنی هم چیچیدهای با دین زدداشته به جامل زیرتاش نمیخوره. سازگار نیست. حالا هر اسم میام میخواد داشته باشه. خب بر عدیان ابراهیمی هم چیزهایی دارند درونشون بستگی باز به تفسیر و احتمالاً بزارش های داره. ولی خب خیلی چیز هست که میشه گفت ناسازگارن هم. و این ناسازگاری ها رو شاید ما درست نمیفهمیم. ولی برحال آنچه که، هر آنچه که به سوی در راه راستی باشه و به را راستی و درستی بره اونها با جهانبینی زرتوشی سازگار هست به هر چی که نباشه سازگاریست پرسیش بعدی هست که از دیدش و زرتوش هدف از خلقت انسان چیست؟ همکاری و هماهنگی انسان با اون آفریدنده و آفرینش در راه اون هدف بزرگتر و یا رسیدن به تکامل و رسایی و بهتر کردن همیشگی هستی و از بدی ها به قول معروف دورش کردن و به سوی نیکی بردن این هدف از بودن انسان به عنوان همکار اهورامزدا است در پیش پیشبرد جهان به سوی تکامل اینو به سادگی میشه چنین گفت اجازه بدید که ببینم بسیار خوب این واب پس این پرسشی بود که تا کنون به دست من رسید و خب صده آران هست چون آخرین بار بیست و دوزدید هست بسیار خوب من یک چیز رو فقط بهش بیفردازم، یه پرسش همیشهگی و بزرگ است که اینو چون ما امروز در مورد راستی و درستی و خوب و بد و اینها صحبت کردیم و این پرسش کمابیش همیشه وجود دارد. اینو من سعی میکنم که یه پاساخی بشه بدام صحبت از خوب و بد وقتی میشه به ویژه از دید هایی که از دید سیستماتیک فرق دادن با طرز فکر ما میگن که های قوت رو شما مق هست یا نسبی تو تا پاسخ داره ما از اشا صحبت کردیم وقتی که در واقع میتون میگییم اشاء مطقه بخوایم یعنی هنگامی که ما، تونستیم اشعار رو به درستی و تا جزئیاتش و تا تشت بشناسیم و در واقع قانونمندی رو بشناسیم خب ما قانونمندی قانونمندی اگه بخوایم بگیم اون مطلقه خب بتونیم بگیم درون گفت اما پیش که به اونجا برسیم و در دنیای ما انسان ها همه چیز نسبی است باشه گفتم که ما اشعار و هشداریم نگفتم. اینجا این هم پرسش بود که اینو اگر نگفتم بگم. بله چون اشا و هیشتا یا بهترین اشایی که همون اردی به خودمون باشه خب باید میپرسن که خب اگر اشا یک چیزه دیگه اشا و هیشتا چیه یا بهترین اشایی پس چه معلی میتونه داشته باشه؟ شاید یه تعریف خوبی بشه دلیل زمینه کرد اینه که به همین پرشتشی که الان بود پیوندش میدن از اونجا که همه نسبیه در زندگی ما انسان ها وقتی که ما گذینش های گناگون جلو داشته باشیم بخواب بیا انتخاب بکنیم به چیزهای مختلفی یه گفتم همیشه هم ما راه های گناگون هست انتخاب کنیم و هرچی دانشمون بیشتر خردمون بهتر کار میکنه برای, پل... برای گزینش درسته خیلی وقتا ممکنه راههایی که پیش با اون هست راه ها خوب باشه یعنی دلید نمیشه راه بد باشه ولی به هر حال یکی از اینا هست که نشون میده که بهتره نتیجههایی که از اون گرفته میشه حالا در کوتاه مدت یا بیشتر ترض مدت نشون میده که انتخاب بهتری است و بعضی وقتا می نه انتخاب کردیم و راهش هم رفت می نه اون نه میخواستی و ازش نگفتیم یا به اون. اگر رای می رفتیم بهتر اینو بتو بگیریم که در این بین این اشاها اشاهای بهتری هم وجود داره که شاید یکی از اینا هم بهترین باشه بنابراین اونجا در زندگی ما میشه اشاها و هیشتها رو به این معناه نسبیت بیشتر تنیف کرد اما میتونیم اینجوری بگیم در, در همین دنیا نسبی ما یک چیزهایی هستن که اگر مطلق مطلقم نباشند به سمت مطلق بودن گرایش دارند که مهمترین اونا هم میتونم بگم خود زندگیه جان یا زندگی که شاید مقدس در چیزها باشه خب حد چی که در راه زندگی و نگاهبانی از زندگی و گسترش زندگی باشه سپنتاست و سپندینه است و مقدس و خوب است هر که وارون اون باشه بخواد زندگی رو از بین ببره و مظاهر زندگی رو از بین ببره و جان رو از بین ببره خب اینها اینها اینها ویرانگر بد هست پس اینها به گونهی ای به مطرق بودن میرن اما حتی همین ها هم اگه از زاوی های دیگه نگاه کنیم باز از زندگی ما انسانی نگاه کنیم میبینیم که باز اونجوری که میخوایم مطرق هستن یعنی چی؟ برای نمونه در نظر یک ویروس، باکتری، میکروم که اینها هم حال جزء همین هستند هستی هستند و در چرخه همین هستی هستند و خیلی وقتا هم کاری به ما ندارن در میدونیم دیگه در بدن همه ما هزارها باکتری و میکروم و اینا هستن که اندازه های خودشون رو دارن و خیلی هم برای ما خوب باکتری های مفید به صورت ساز بدن ما کمک میکنن انرژی میدن و وا وا خب اما بعضی وقتا به دلار کوناگون اینا زیانبار میشن خب ما مجبوریم چیکار کنیم جلوی در واقع زیان اینها رو بگیریم و حتی در بدین خیلی مواقع شاید ممدود نباشیم ما جان چیز رو بگیریم تا بخوایم که اثر بدش رو تر موقعت بعدش رو از بین ببریم همین که ما بتونیم جلوش رو بگیریم بتونیم ایستش بدیم بتونیم خونساش بکنیم در واقع پیش از اینکه که ویرانگر رو از بین ببریم ویرانگری رو از بین ببریم این بهتری نشه. اگر شدنی باشه که ویرانگر رو به گونه ای چشمشو باز کرد و بتونه به راه درست برگرده به راه سازندگی برگرده برای ما مقدم از بین بردن دروغ کار نیست بلکه مقدم از بین بردن دروغ است از راه درست و راست و اشایی تا اونجا که میشه ولی جواب به حال این سوال این بود که خوب و بد نظر ما مصلق میسن یکی از جاهایی که من باید بهش اشاره کنم برای اون کسایی که بیشتر شاید خواندن و کردن ببینید یکی از سرچشمه چشمه های مسئله خوب و بدی اگر ما از نظر تاریخی یعنی کهان بودنش هم نگاه کنیم برمیگره به گاتاهای هرشو در پشن. که در واقع در میشه گفت در یسنای سی و از اونجا که ایشون میشه گفتش که آموزش هاشون به گونه آغاز میشه یکی از اولین بندها صحبت از همین میکنه صحبت از این دو نیروی که در اندیشه ای انسان به صورت دو مینون به صورت دو مینون گفتم از منن یاد منم از اندیشه میاد به دو شیوه اندیشه هستند اونجا واجه هایی که به کار رفته واجه های که در واجه های که به کار رفته بد و خوب نیستند اونها بد و بهتر هستند یعنی واجه بهتر به کار رفته تا واژه خوب بنابراین از همونجا عجوزتش پایه رو برمنای نسبیت گذاشته و مطلگیره از اونجا نباید بیاد بیرون اینو پس در نظر داشته باشیم اگر ما میخواییم وقت نشانی بدیم یا اشاره کنیم به گاته ها پس بدانیم در اونجا هم نیست اینجا میخوام بپردازم به همین سپنتا مینو و انگرمینو خب که در به طور عموم ما اینو به عنوان بد و خوب میگیم و اون که این بار از بین بره و انگرمینو بار از بین بره و به قول محروف سپنتامینو باید پیروز بشه من میخوام که یه خود زاویه دیدمونو یه خود یه, یه جور دیگه هم نگاه کنیم به این مسئله ببینید ما دو نیروی همزاد و همیستار یا همزاد و رو در در هستی داریم یعنی در واقع ذره بنیادین هستی تا اونجا که دانش ما تا به امروز نشون میده بر مبنای همین دو نیروی همزاد متضاد هستن یعنی در هر کوچکترین ذره این دو نیروی کشش رانش دو نیروی حالا هر چیسمشو بذاریم امرو امر امرو و غیره اینها در برخورد با هم یک دانه جدید رو می آفایدن. از این برخورد این دوست که یک سلول جدید به وجود می آد. یک کستی جدید به وجود میاد و به این ترتیب پیش میره. این دو بد و خوب نیستند این دو در واقع مکمل تمام کننده ی همدیگر هستند هر کدوم به یه شیوه کار میکنند یکی به شیوه کشش به شیوه رانش خیلی اینجوری بگیم خب من میخوام بگم که متوغرایی نکنیم با همه بعضی وقتا که آدم وقتی بدی رو می‌بینه دیگه نمیدونه چیکارش کنه این بدی باید از بین بره تا خوبی بتونه پیروز بشه ولی از اونجا که متقرض نیست باید اینجوری هم نگاه کنیم اون بدی وقتی بد میشه که انداز از اندازه بره بیرون ببینید انگره انگ مینو میتوند انگیزه مینو هم باشه در جهان بدی پدران ما در گذشتهنجور نگاه میکردن یعنی مانند دو چشم یه چشم گفتن نور میندازه و چشم دیگر می یا یه چشم میاد و انگیزه ایجاد میکنه و چشم دیگر دانش میگیره یا مانند دو ما همشه میگم مثل دو تا برادر که یکیشون اون یکیشون آرومه و خردمنده است و همیشه میشین و نگاه میکنه اون یکی, یکی شلوغ کنچکابه میخواد ببینه که پشت هر دلیل چه خبره این درمیز رو باز میکنه اون رو باز میکنه و اون یکی هم میشینه نگاه میکنه و نتیجه میگیده و هر دو از این نتیجه سود میبرن. ولی که وقتا شیطنت میزنه بیرون زیادی میشه از اندازه میره بیرون اونجاست که نظم به هم میخوره اونجاست که اشا هم میخوره و اونجاست که دروغ در واقع تولید میشه و ویرانگری تولید میشه. پس هدف اول در از بین بردن نیست، از بین بردن اون متضاد، بلکه با کمک هم دیگه پیش بردن است. ببین در اینجا که ما زندگی میکنیم در تمام آموزش‌هایی که ما در حالا آموزش‌های آکادمیک یا کلاس و مدرسه و غیره همیشه اینو یاد میدن این هست که یک گروه اولا کار است و در یک گروه اگه همه یک جوش فکر کنن همه هیچوقت پیشرفت وجود نداره بنابراین در زندگی اجتماعی ما انسان ها خیلی مهم هست که ما بتونیم خرد گروهی رو وقتی به کار میبریم در این گروه بدونیم چگونه از گوناگونی افکار بتونیم استفاده کنیم برای پیشرفت. منتها باز یه داره دیگه. اینها همه هدفشون باید سازندگی باشه. هدفشون باید پیشرفت باشه تا در اون گونه گونی بتونه بهترین راه ها شناخته بشه و انتخاب بشه. خب. این هم یک کوچکی از این داستان خوبه یک پرسش دیگه هم اومده. اینو پاسخ میدم و تا پنی دقیقه دیگر این نشست رو به پایان میرسونیم. ام آیا موجودی گرامی به جهان غیب یا ما برای طبیعی و یا متافیزیک در حول گردش این جهان مادی و فیزیکی و فانی اعتقاد دارن؟ و نظرشون در این در مورد این جمله چیست که دنیا نیستی است؟ به شکل هستی آراسته شده است. شاید در این مورد بتوان به یک برنامه داد سخن دار. اما به کوتاهی اینجوری میتونم بگم نظر من خوب خوب اولا دخلی ما میگیم ماورای طبیعی یا حالا متافیزیک به نظر ما اینگونه دنیا رو نگاه نمی کنی. یعنی چیزی ماورای طبیعت وجود نداره همه چی طبیعته خب؟ ولی اگر چیزی که ما نمی بینیم آره چون نمی حالا حتی خب چشم،, چشم ما چشم فیزیکی محتمه چیزی نمی ببینه حالا ما اومدیم این دنیای دیدنمون رو و چشممون رو قوی تر کردیم به وسیله چیزهایی که میسازیم از میکروسکوپ و تلسکوپ گرفته یا بزرگ کننده ها تا خب دستگاه های دیگری که دیگه میشه گفتش که شاید پیش تعینشون همین این است که الان اسمش یادم نیست که در زیر زمین ساختن و به طور چندین کیلومتر بینه چند کشور که یک، دو تا ذره رو به هم بزنند و این ذره‌ها بشکنند و ما بتونیم که بریم بیشتر در دل این ذره‌ها ببینیم که اون میتونیم بالاخره به پای تش برسیم ببینیم که چیه که این هستی رو می‌سازیم خب یعنی اونجا که ما معذور این بود اونهایی که نمی‌بینیم اگه اسمشو به جهان قیبیشون بذارم آه. این که در این جهان نادیدنی یا در این در این در این در همین جهان ولی اون بخش نادیدنی چه اتفاقاتی میفته اینها باز از نظر من در دل طبیعت و در دل دانش وجود دارن یه روزی هم به اینها خواهیم رسید اما اگر منظور خب اینه که اگه به روح و روان بخوام بپردازیم اون خب اون یک دیدگاه قضیه است ما به روان باور داریم یا به هر حال به گونهی دیگری از در شکل دیگری از همین جهان جهان نادیدنی یا بهتر بگیم که اگه بخواییم دانشی همینجور نگوش کنیم اینه که انرژی ها و تا که باز میگم دانش ما اجازه میده انرژی ها پایان نمی انرژی ها از شکلی به شکل دیگر دیگر گرگون میشند و ما هم چیزی نیستیم جز یک انرژی توده به هم چسبیده شدیم یعنی هر چیزی که دیدنی میشه قابل دیدنی میشه همه جسم ها اشیا همه چیز انرژی هستن و این انرژی ها وقتی که مص میشن یعنی به هم پیوند پیدا میکنن در کنار همین ملکول ها میشنن شکل دیدنی به خودشون میگیرن خب ما همه هم میدانیم که از همین چهار آخشیج اصلی به وجود رو چهار المنت چهار امسر و بخش هایی که بعد بیشتر بهش خواهیم رسید که ما انسان رو چگونه نگاه می‌کنیم، به بر حال اون بخش فیزیکی و طنی ما وقتی که این جان از دن بدل میشه خب اونا بر میگرده به آخینشا، یعنی همون ها هم باز به طبیعت بر و همون ها هم در دل این طبیعت و اشکال دیگری رو به خودشون می بنابراین اینها ما روان هستیم، ما جاری هستیم، در این زندگی و در این جهان از شکلی به شک دیگر دیگر میشین پس بنابراین اگه بخوام بگیم اعتقاد نیست یعنی باور خب بخشش آدم میتونه باور به شمار بیاره ولی به نظر من یک واقعیت هم هست واقعیت که دست کم در جهان پیرامون ما میبینیم و اینکه دنیا نیستی است و به شکل هستی آراسته شده حالا این هم یک جمره فلسفیست اگه بخوایم بگیم یعنی چی نیستیست و به شکل هستی آراسته شده آن چیزی که شکل, شکل میگیره به خودش حالا به قبول شکل هستی یعنی چیزی که ما میبینیمش نیستی یعنی چیزی که نیست هست نمیتونه بشه هر چیزی که هست و ما میبینیم فقط تونسته به یه شکلی برسه به یک انبوه ای برسه که ما ببینیمش بنابراین. من این میخوام به خود برگردیمم به اون داستان خلقت و اینا هیچ چیزی از نیستی نمیتونه به دارید درگیرد حالا اینا دیگه اگه برگردیم هی بخواییم بریم به عقب و به اون به قول آغاز جهان برسیم و که آیا در ابر نیستی بوده و چی هستی شده اینها میتونم بگم دستگم اونجا دیگه من پاسخی برش ندارم اونجا دیگه یه چیز باوریست ولی آن چیزی که چشم درون و برون ما تا به امروز و خیرد ما به من نشون میده اینه که هستی از شکلی به شکلی دیگر به یعنی میشه خب دوستان دیگر زمان به پایان رسیده یک ساعت و نیم با شما بودیم با هم بودیم سپاسگزارم از این که به هر حال آن گروه که ما هم و هستید و آن گروه هم که نتونستن بیان خب اینها باز پرش خواهد شد و باز هم از همه سپاس گذارم از زامانگرهای گرانی هم سپاس گذارم به همه شب خوش و بدرود میگم و براتون آرزوی روزها و ها و هنگامه های خوبی دارم تا بتونیم دوباره در کنارها هم باشه شب خوش خدا مگهدار به درود تا درود دیگر